نوباری شماره 537 جی قسمت هفتم کتاب آن کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 188 به پرستار دادی و به او گفت که برود آنگاه چبدان خود را باز کرد و از آن مقداری عکس بیرون آورد پس از آن عکس های سیرج را که در چندین سال عمرش از او برداشته بودند، تماشا کرد در چشمش به عکس فرونسکی افتاد برای اولین مرتبه در آن روز به یاد او افتاد و به خاطر آورد که او سبب بدبختی و بیچارگی او شده است از روی سرزنش و بیهول سلگی گفت ولی او کجاست؟ چرا او میگذارد من تنها بمانم و دستخوش اندوه باشم؟ آنا فراموش کرده بود که او با فرونسکی درباره ملاقاتش با طفلش چیزی نگفته و وی از اندوه او خبری ندارد از این رو دنبال او فرستاد و با کمال بی صبری منتظرش گردی بی خدمت برگشت و گفت که فرونسکی با بعدی از دوستانش در اتاق خود می باشند. او همین اکنون چنانچه اجازه بدهند با یکی از دوستان خود فرانس یاشوین بالا خواهد آمد. آن نا خود گفت پس او نمیخواهد تنها بیاید. من همه چیز را به او بگویم؟ ناگه هان فکر عجیبی به خاطرش خطور کرد. راستی چه می شود اگر عشق او نسبت به وی کم شده باشد؟ آنا حوادث روزهای اخیر را به خاطر آورد. دید خاطراتش این فکر را تایید می کند. مثلا او اصرار کرد که در اتاق مخصوصی اقامت گزیند و روز گذشته با وی قضا صرف نکرد. او اکنون حاضر نیست تنها به دیدن او بیاید. شاید از این میترسد که از حرکات و رفتار او بازخواست کند. آننا پیش چنین گفت ولی او باید با سراحتی لحظه به من بگوید که مرا دوست نمی دارد. تا من بدانم چه باید بکنم. ولی او نمیدانست چه باید بکند؟ ترس و وحشت به وی دست داد. زنگ را نواخت خادمه خود را دنبال فرونسکی فرستاد. آنگاه به اتاق مجاور رفت سر و روی خود را مرتب کرد تا از هر حیث زیبا به نظر برسد. و وقتی به اتاق پذیرایی برگشت فرونسکی و یاشین را در آنجا دید. سروفکی مشغول دیدن عکس‌های سیرج بود که آنا آن را فراموش کرده و بر روی میز دیده می‌شد. سروفکی مانند همیشه فوری به استقبال آنا نشتافت. آنا کارینا در حالی که دست کوچک خود را در دست یاشوین میگذاشت گفت: گمان می‌کنم او قبلا چندین مرهم دیگر را دیده باشند. شاید در میدان مسابقه. فرانس تبسمی از روی لطف نمود و دست آنا را بوسید. آنا گفت: من شما را میشناسم و می که علاقه زیادی به پرورش اسب دارید. آنا پس از ادای این کلمات به هم سمتی که فرانسکی بود رفته و با کمی خشونت اصهای پسر خود را رو بود و گفت اجازه بده آنها را در نزد خود محفوظ بدارم. آنگاه رو به پرانسیاشفین کرد و پرسید آیا مایلی زیاد در پترزبورگ بمانی؟ پرانس گفت نه همین فردا پترزبورگ را ترک گفتی و به موسکو می روهم. سرونسکی گفت، پس باید شام را امشب با ما صرف کنیم. مرد گفت، گمان نمی کنم زیرا میخواهم امیلیا بانی را به روی سهده اپرا مشاهده کنم. آن فریاد برابرد، امیلیا بانی می که به ای رقصی زبردست و ماهر می باشد. مرد گفت، اگر شما قبلا به کسی وقت نداده باشید و اجازه بفرمایید لوژی را در تماشاخانه اپرا برای مشاهده آن رقاسه بگیرم. چهره ی آننا باز شد و پاسخ داد. این شب نشینی خوبی خواهد بود ولی من به یک شرط آن را میپذیرم. مرد گفت و آن کدام شرط؟ آننا گفت شام را با ما صرف کنید. بسیار خوب موافقم. فروسکی به این صحبت داد و با نگاه تعجب. آننا را نگریسته و پیش خود گفت آیا مایل است به اوپرا برود؟ در آنجا حتما دوستان آشنایان سابق خود را خواهد دید. فرونسکی به دوست خودی آشفین اول داده بود که با او برود و از پای جدیدش را ببیند. از این رو هر دو با هم از اتاق خارج شدند. وقتی فرونسکی برگشت دید که آنا مشغول آرایش می باشد. او جامع ابریشمین نازوکی برتن کرده بود که سینه و بازوانش را نمایان می ساخت و زیبایی چهرهرش را آشکار مینمود. فرونسکی بدون آن که به چشمان او نگاه بکند گفت: آیا حقیقتا مایل هستی به اپرا بروی؟ آنها که حقیقتا از نگاه نکردن فرونسکی به چهره او به تنگ آمده بود پاسخ داد، چرا با این لحنی که دال بر نگرانی و شک و تردید است از من چنین سوالی را مینمایی آیا مانعی دارد که من به او بروم؟ فروسکی گفت به تب نه آنا با لحن تعکما آمیز او را ندیده گرفته و گفت عقبه من هم همین است آنگاه در برابر آینه به آرایش خود پرداخت فروسکی برای اینکه آنا را به راه راست برگرداند با صدای لرزانی گفت آنها، تو را به خدا فکر کن. چه میخوایی بکنی؟ آنها گفت، فرانسکی، نمیفهمم مقصودت چیست. تو میدانی که نباید بروی. برای چه؟ من من تنها نخواهم رفت. من دنبال امنم شاهزاده خانم بار فرستادم و او با من خواهد آمد ولی فرانسکی، شانه خود را حرکت داده و در حالی که از روی یه به او نگاه میکرد گفت ولی آیا میدانی که من نمیخواهم بدانم من نمیخواهم آیا تو گمان میکنی که من از کرده خود انگشت ندامت را خواهم گذید خیر خیر من زندگانی خود را از نو شروع میکنم دو مرصبه همان کاری را که اول کردم خواهم نمود قضیه نسبت به من و تو همان است که بود و آن این است که یکدیگر را دوست بداریم. من هیچ اهمیتی به اعتباراتی غیر از این نخواهم داد و به این مناسبت اصلا میپرسم که چرا تصدیم گرفته ای در اتاق دیگری غیر از اتاق من اقامت نمایی و چرا من باید به اوپران نروم من تو را دوست میدارم و اهمیتی به این خبر نمیدهم که آنا از ادامه کلام خود کرد در این موقع چشمانش برقی زد برقی که فرنسکین نتوانست سبب آن را درک کند. آن را در تکمیل عبارت خود گفت اهمیتی جز به این نمی دهم که مرا دوست بداری و همیشه قلبت به عشق من به چرا به من نگاه نمی کنی؟ که نگاه بر او بیفکند. سینه برجسته و بازوان ظریفش او را بیتاب کرد. با صدای لرزانی گفت آنا؟ تو میدانی دانی که من خیلی دوستت میدارم و همیشه قلبم از عشق تو می تپن. ولی از تو خواهش میکنم که نروی تو را به خدا مرو ولی آنها صدای او را نشنیده گرفته و به خواهش وی اهمیتی نداد آنها همه اشبوت وجهه نگاه های سردی که در چشمان فرانسکی نقش بسته بود گردیده و با بیحوصلگی گفت خواهش می توضیح بده که چرا من نباید بروم. فرانسکی گفت. زیرا این کار تو را وادار می کند که فرانسگی ساکت شد و متحیر ماند که چه بگوید. آن پاسخ داد. من مقصود تو را نمیفهمم فهمم. از یاشفین مرد محترم و خوشبیانی است. شهصاب خانم باربارا زن بدی نیست و بودن من با آنها نباید کسی را نگران سازد. آه این است شهصاب خانم باربارا آمدند. فصل هشتون اولین مرحله ای بود که فرانسکی نسبت به آنها خشم و غضب مینمود. زیرا آن کارنینا اصرار داشت که موقعیت خود را نادیده بگیرد. خشم و غضب فرونسکی افزون گردید. هنگامی که دید نمی‌تواند با آن کارنینا از روی استراحت لهجه صحبت کند، زیرا ترس از آن داشت که عواطف آنا دار گردد. فرانسکی گفت: رفتن تو به اپرا با این جامعه نازک شهوت به همراهی شاهزاده خانومی که نام نیکی ندارد و با همه مردان مراوده دارد اعترافی است بر اینکه تو زن هر هرزه‌ای می باشی ولی فرانسکی که در خود این جرأت را نمیدید در پیش خود با بی‌حوصلگی گفت چرا خودش متوجه این چیزها نمی شوی آنا به همراهی شاهزاده خانم باربارا و پرنس یشتین از مهمانخانه خارج شد سرونسکی در اتاق خود تنها مانده، مشغول قدم زدن گردید و باز پیش خود چنین میگفت. ما امروز در ماه دوم فصل نمایش ها هستیم و این اولین نمایش های امیلیا بانی می باشد. بدون شک نمایشگاه پر از دوستان و آشنایان می باشد. در آنجا برادرم با همسرش و شاید هم مادرم حضور داشته باشند. باید حالا آننا به اپرا رسیده، پالتوی خود را کندی و در لوج، بین یاشین و باشند. چرا من گذاشتم که او با یاشوین برود مردم خواهند گفت که من او را تحت حمایت یاشوین قرار دادم و جرأت آن را ندارم که به وی در برابر مردم ظاهر شوم آه پروردگارا چرا آنا مرا به این حال انداخت سرانجام فروفگی تصمیم گرفت که اننا به دنبال آنا کازینا به اپرا برود و از این رو فوری لباس پوشیده و به دادسوشه تافت او هنگامی به اپرا رسید که پره اول به پایان رسیده بود در سالن، اشخاصی را مشاهده کرد است که آنها را نمی آنگاه نگاهی به لوش های بالکونی افکرد که گروهی از اعیان و اشراف را در آنجا دیده می پس در این لوش ها تیپ و طبقه او وجود دارد فرنسکی از جلوی لوش ها در راهروی دست چپ براه افتاد و یکی از دوستان افسرش او را دیده اظهار داشت آه فرنسکی این تویی چقدر این لباس به تو برازنده است کسی که بر تو نظر می خیال کند که تو از مردان سیاست یا هنر و ادب میباشی فرونسكی تبسمی نموده پاسخی نداد آنگاه عینک خود را بر گذاشت افسر گفت متأسفانه تو پرده اول را ندیدی فرونسكی در پیدا کردن لوژ آنا چندان به زحمت نیفتاد زیرا این لوژ را بر اثر توجه هزار به آنجا پیدا کرد. آن لوژ لوژ پنجم در اشكوبهٔ دوم بود آننا در جلوی لوژ بین باربارا و یاشفین نشسته بود. فرنسکی تناسب سر زیبای آننا را در میان دو شانه چون دو آج ملاحظه نمود. و همچنین متوجه درخشندگی چشمان درشت و فتانش گردید. به یاد آن شبی که در موسکو با او رفتیده بود افتاد ولی اکنون زیبای آننا آن اثری را که در آن شب در خاطر او باقی گذاشته بود نداشت. زیبایی و دلربایی آن کارنینا در آن شب به شکل مرموز و ملکوتی نمایان بود ولی حالا که فراسکی به تمام رموز زیبایی و اخلاقی آن کارنینا پی برده بود جمال وی در نظرش زننده و شرم‌آور جلوه می کرد آنا در آن لحظه به فراسکی نگاه نمی کرد ولی فراسکی یقین داشت که آنا او را دیده است فراسکی در عین حال متوجه شد که چهرهی شاهزاده خانم باربارا کاملا برفق است. و از روی اجبار می و هر لحظه به لوج مجاور نگاه می آنا پس از آن که آهسته کلامی در گوشه یاشفین گفت سر برگرداند که این طرف را ببیند یا اینکه میخواست آنچه را که در لوج مجاور میگذارد نبیند. فروفی به لوج مجاور لوج آننا نگاه کرد و در آن کند کارتازوف و همسرش را دید. زوجه کند طوری ایستاده بود که پشتش به طرف آنکانینا و رنگ از چهرش به کلی پریده بود لبانش با سرعت حرکت میکرد و با دست خود به چپ و راست اشاره مینمود نگاه های شکایت از خشم و تأثر و نفرت مینمود کند کارتازوف به آرمی با زوجه خود صحبت میکرد مثل اینکه میخواهد از شدت انفعال و تأثر و خشم او بکاهد در عین حال چشمی به آننا نگاه میکرد و شاید امید داشت که آنا سر به سویش برگرداند و او به طوانه خواسته و در برابرش سر فرود آورد. سرونسکی ملاحظه کرد که آنها متوجه نگاه های کنت می باشد ولی عمدن آن را ندیده می پس از آن کنت کارتازوف با خشم تمام از لوژ خارج شد، کنت هم دنبال او بیرون رفت و لوژ خالی ماند. سرونسکی نمی دانست چه اتفاقی بین کنتز کارتازوف و آننا رخ داده است. ولی حس کرد که آنچه چه روی داده است نسبت به آن مینا مهم بوده است. سر به این امر وقتی پی برد که دید چشمان آن می درخشد و حس کرد که آنا سعی کوشش میکند تا خون سردی و آرامش خود را از دست ندهد، چنان که در این امر هم موفقیت حاصل نموده و ابدا علائم برف و انفعال دستیمایش مصاحبه نمی گرد. اما مردانی که آنا را نمی شناختند و سخنان زنان را درباره او نشنیده بودند، او را زن نجیب و موقر بسیار زیبا و دلربای می‌دانستند. در هر حال، فروسکی احساس نگرانی و وحشت نموده، به سوی لوژ برادر خود رفت تا شاید از وی خبری بگیرد. فروسکی در راهرو به گروهی از افسران که مشغول صحبت بودند برخورده و چنین به نظرش رسید که نام کارنین را در بین کلام آنها شنید، ولی یکی از افسران او را دیده فوری با هنگی براورد گویی میخواست همکاران خود را به این وسیله ساکت کرده باشد همان افسر به فرونسکی گفت آه فرونسکی چه وقت به هنگ ما میایی ما باید جشنی به خاطر تو برپا سازیم فرونسکی در حالی که میخندید گفت من تحت اختیار شما هستم ولی به تب نه حالا آنگاه به همکاران خود سلام داده و به سوی لوژ برادر فیش شتاست. در آنجا خانم فاریا و مادرش و یکی از دوستان مادرش را که کنتس سرکینی نام داشت، یافت. خانم فاریا به استقبال او به در لوج آمده، دست او را فشار داد و درباره موضوعی که فرانسکی را نگران ساخته بود، صحبت نمود. فرانسکی هیچ وقت فاریا را تا به آن حد متعصر و منفعل ندیده بود. فاریا گفت، راستی این مرد اصفناک و حفرت آور است. کنتز کارتازوف حق نداشتان کار را بکند. مادم کارنینا فرانسکی کلام او را قطع کرده گفت، مگر چه اتفاقی رخ داده؟ زن گفت، مگر نیدنی چه رخ داده است؟ راستی زنه پستر از این کنتس ندیدم. فرانسکی گفت، آخر او چه کرده است؟ زن گفت، شوهرم گفت کنتس به مادام کارنینا اهانت کرده است. زیرا شوهرش کند، به آن کارنینا سلام کرده و آنها هم تعارف او را پاسخ داده است. در نتیجه ظاهرا کنتهس سخنان اهانتآمیزی با صدای بلند به کارنینا گفته و از لرژ خود خارج کرد. در این لحظه کنت سوروکینی فررونسکی را مخاطب قرار داد و گفت آقای کنت فررونسکی مادرتان میخواهد با شما صحبت کند. مادر فرونسکی با توسم تمسخرآمیزی که بر لبانش نقش بسته بود گفت من انتظار آمدن تو را داشتم چرا دیر به دیر تو را میبینم راستی چرا به نزد مادام كارنینا نمیروی او در اینجا بوغایی برپا کرده و به جای اینکه مردم به رقص امیلیا بانی نگاه کنند متوجه او گردیدند. سروسکی ابرو هم کشید و گفت مادر من از شما خواهش کردم در این موضوع صحبت ننمایید مادر گفت من چیزی جز آنچه مردم میگویند به تو نگفتم سروسکی دیگر پاسخی به مادر نداد و با کنته سوروكینی چند جمله تعارف کرده لوژ را ترک نموده و در این اندیشه بود که لاقل کاری بکند. او نسبت به آنکارنینا ناک بوده زیرا خود اوست که چنین وضع دشوار و موهنی را برای خود ایجاد نموده است. فراسکی به لوجه آنکارنینا رفت و مشاهده کرد که او با یاشفین صحبت میکند. آنا سلام کرده و به یاشفین دست داد. سپس تبسمی به شاهصاد خانم باربارا نمود. آننا با لحن آمرانی گفت کمان می کنم که باشید. از دیدن یک سحنه تماشایی محروم ماندی. فرنفکی پاسخی نداد. ناگاه چشمش به یک دستکش آننا تلاقی کرد که روی زمین افتاده بود. شد آن را برداشت و تقدیم وی موده آننا از او تشکر کرد. شادابی و درخشندگی چهره آننا کامینا تغییر کرد و چنین به نظر فرنفکی رسید که میخواهد گریه کند. ولی به هر طوری بود، آننا خودداری کرده نگذاشت قطرات اشک از چشمانش فرازیر شود. پس از آن پانتوی خود را بر دوش از لوژ خارج شد بدون آنکه نگاهی به چپ و راست خود بنماید. فراستی تا پایان پرده دوم در اپرا و پس از آن به مهمانخانی مراجعه کرد و دید که آنها زودتر از وی آنجا رسیده است. او دید که انکرنینا در اتاق خود بی حرکت نشسته و مبهوتانه به دیوار نگاه می کند و هنوز لباس خود را در نیاورده و کلاه سر دارد. زرونسکی حس کرد که قلبش از مهر و شفقت به آنها نزدیک است پاره شود. آهسته گفت آنها. آنها فریاد برآورد تمام اینها به خاطر توست. آری به خاطر توست. آنگاه از روی نامیدی و شرمندگی و خشم بنای گریستن را گذاشت فرانسی گفت ولی من به تو التماس کردم که نروی من می دانستم که وجود تو در آنجا رضایت بخش نخواهد بود من نگفت رضایت بخش؟ آنجا برایم محجب دوزخ را داشت من تا اون دارم احانتی را که به من شده است فراموش نخواهم کرد کنتس به من گفت که نشستن او در نزدیک من آرو ننگ است مرد گفت او زن نادان و احمق است. نباید به سخنان او اهمیت داد. ولی تقصیر از توست. تو نباید. آنا گفت: من از سکوت و خونسردی تو در عذابم. تو مرا به این بدبختی گرفتار کردی. اگر تو به راستی مرا دوست میداری باید مرد گفت: من من آنا گفت: آری تو تو اگر مرا دوست بداری و در غم من شریک باشی، باید آنگاه آنها از روی نگرانی نگاهی به فرونسکی از گنده ترسید که مبادا با کلام خود فرونسکی را خشم و متنفر سادن. از این روز ساکت ماند و سخنان خود را به پایان نرسانید. روز دیگر آن دو به مزاره فرونسکی رفتند. داریا چند هفته بود که با دوست خود کاترین در مزرعه لیفین شوهر کاترین به سر می برد. روزی شنید که کونت فرنسکی و آنا کارنینا در مزرعه فرنسکی که نزدیک مزرعه لیفین واقع شده بود اقامت دارد چون محبتی به آنا داشت در جز می خواست بداند که زندگی نوید او چگونه است تصمیم گرفت به ملاقات آنا برود با اینکه کاترین و لیفین از رفتن او به خانه آنا اظهار عدم رضایت نمودند ولی داریا تصمیم قطعی داشت در یکی از روزها داریا با یکی از گماشتگان لیفین سوار اسب شده به سوی مزرعهی فروفکی شتافت و سه ساعت بعد با ملاک فروفکی رسید گماشتگان به او گفتند که آنا و کنت سوار اسب شده و به گردش رفتند و آنها را به راهی که آنا و فرونسكی رفته بودند راهنمایی کردند داریا دنبال آنها رفت و آن دو دل را در جنگلی که عادت داشتند در آن شکار کنند پیدا کرد. آنا وقتی داریا را دید متعجب شد آنا از اسب به زیر آمده با ابراز مسرت داریا را در بغل گرفته و به سینه چسبانید پس از آنکه آنا کمی آرام شد داریا را به فرونسكی معرفی و او را هم به داریا معرفی نمود آنگاه آن سه مراجعت کردند تا ناهار را با هم صرف کند. فرونسکی پیشاپیش پیش می و داریا به فاصله چند متر از او دنبال می کردند. در بین راه آنا متوجه شد داریا زیر چشمی به او نگاه های طولانی می آنا با کمی خشونت گفت بدون شک تو که این گونه خیره به من نگاه می چنین چون این می که می بدونی آیا من خوشبخت هستم یا خیر. من شرم می آید از این که به تو بگویم که من خوشبخت ترین زن روی زمین می باشم. من مانند شخصی هستم که از خوابهای هلناک سراسیمه بیدار شده و یک مرتبه می بیند که بر برچهراش تابیده و عوضاً اثری از آن خوابهای وحشتناک وجود ندارد. دریا تبسمی نموده پاسخ داد از خوشبختی تو کاملاً خورسندم ولی چرا نامهی برایم ننوشتی؟ آنا گفت برای اینکه من جرات نمی کردم. آنگاه آهی کشید و اضافه نمود. آیا موقعیت مرا فراموش کردی؟ زن گفت: چگونه جرأت نامه نوشتن به من را نکردی؟ تو میدانی که موقعیت تو هر چه باشد، من تو را دوست می‌دارم. انسان کسی را که دوست داشت هر طوری که باشد، او را دوست می‌دارد. آیا آن معنی من یه این کلام را دریافته و گفت: اگر تو گناهی کرده باشی، خداوند گناه تو را به خاطر این ملاقات و به خاطر این کلام خواهد بخشید و پس از ادای این کلمات چشمانش پر از عشق شد. دریا متوجه گریه او شده و برای اینکه موضوع صحبت را تغییر دهد گفت این خانه های کوچک چیست؟ آنا گفت این خانه های کشاورزان است. ما این ابنیه را از وقتی که در اینجا اقامت نمودیم بنا کردیم. این هم آخر چهار پایان است. این بنایه بلند هم زایشگاه است که من را مخصوص زنانه دهاتی بنا کردم. زن گفت آه پروردگارا چقدر خوب تو این مزرعه را به صورت بهشتی در ورده ای؟ تبسم تلخی نموده و پاسخی نداد. فصل دو روز سوم، آن سه نفر از گردش روزانه خود در جنگل مراجعت نمودند و لازم بود آنکانینا پیش از آنکه صرف نماید سری به زایشگاه بزنند آن از داریا خواست که با او برود فراسکی گفت چون این به نظرم می رسد که شاهزاده داریا خسته است و بهتر آن است که ایشان برگردند و تو به زایشگاه برو و به من اجازه بده با ایشان به خانه بروم داریا متعجب شد و نگاهی به فراسکی افکند حقیقتا داریا خسته بود و در این موقع نگاههای داریا با نگاه های فراسکی متلاقی گردید و دانست که او میخواهد با او تنها بماند از این رو, رو به آنها کرده و گفت راستش این است که خستم و بیمیل نیستم که بازگردم. وقتی آن دو دور شدند و فرونسکی یقین حاصل کرد که آنها داخل زایشگاه شده است چشمانش برق زد و گفت بدون شک شما دانستید که من میخواهم با شما صحبت کنم. شما با وفاترین دوستان آنها میباشید. او حرف شما را میشنود و شما را محترم میدارد. خواهش میکنم به من کمک و مساعدت کنید داریا ساکت ماند و چیزی نگفت. بیرفتی خیلی نگران بود. همین که دید داریا چیزی نمیگوید، در تعقیب سخنان خود گفت: شما از دوستان قدیمی آنا هستید و شما یگانه دوستی هستید که به دیدن ما آمدید و اعتنایی به سرزنش مردم نکردید. شما اید تا با مهربانی و بزرگواری خیش او را تشویق نبوده و دلداری بدهید. داریا آهسته زیر لب گفت: این درست است ولی فرنسکی کلام او را قطع کرد و گفت شما نمی دانید که آنها چقدر قصه می خورد. من سبب قمق اندوه او شدم. داریا از صراحت لحجه فرنسکی متعجب شد و گفت ولی گمان نمی کنم شما مسئول این امر باشید. به علاوه تصور هم نمی کنم که آنها هم آن محزون محضون و دردنات باشد. زیرا او خودش به من گفت که خوشبخت می باشد. فوری گفت من می دانم که او است. ولی من از آینده ترس دارم و هزار فکر در آن می کنم بین من و آن چنان رابطه ای ایجاد شده که تردید دارم تا آخر دوام کند ما دختری داریم و شاید دارای اولاد دیگری هم بشویم. ولی با این حال موقعیت قانونی و اجتماعی ما مایه نگرانی است دختر در نظر قانون فرزند من نمی باشد بلکه فرزند کرنین محسوب می شود و همین مسئله مرا را ساخته است دریا پاسخی نداده با تعجب به او نگاه کرد. فروسکی باز گفت: و در آینده نزدیکی شاید دارای پسری بشوید. پسری من؟ ولی این کفت هم به حکم قانون فرزند قانونی محسوب خواهد شد. هرقدر هم که ما در محیط خانوادگی خوشبخت باشیم و هرقدر هم خداوند به ما اولاد اتا فرماید، ما همچنان نسبت به یکدیگر بیگانه خواهیم بود و رابطه شرعی ما را به هم متصل نخواهد نمود. فکر کنید که چقدر این زندگانی دردناک و غیر قابل تحمل است. من چندین بار خواستم در این باره با انکرمی ناسخ صحبت کنم. ولی ترس و ناراحتی نگذاشت که سخنانم را به او بگویم یا اینکه میترسیدم او بد تعبیر کند. درست است که من از عشق او خوشبختم ولی باید شغل و کاری داشته باشم و کار را در مزرعه خودم پیدا کردم. من به این کار افتخار می کنم و آن را بهتر و شرافتمند تر از کارهایی که دوستانم در دربار و یا در ارتش دارند میدانم. ولی چه فایده دارد که من شب و روز کار کنم و وارسی نداشته باشم که املاک و نامم به او برسد آنگاه آهی کشید و قطرات عرق را که از پیشانیش جاری بود پاک کرده باز در تعقیب سخنان خود گفت این است حال من حال مردی که میداند اگر پسری زنی را که او را دوست می دارد پیدا کند مال او نخواهد بود بلکه از آن مرد دیگری خواهد شد مردی که آن پسر را نه فقط دوست نخواهد داشت ولی از او متنفر و بیزار خواهد بود راستی بدبختی غیر قابل تماملی است و الحق من بدب ترین مردان روزگار می باشم دریا گفت: من میفهمم که شما چقدر رنج می برید ولی آننا چه می تواند بکند فرونسکی گفت. آه من هم برای این می میخواهم با او صحبت کنم. او می تواند کارهای زیادی بکند. او میتواند بخواهد و پرستاری دخترش را به عهده بگیرد. شوهرش در امر طلاق موافقت نموده و فقط منتظر این است که آنا قطعاً درخواست طلاق بنماید تا وی تشریفات آن را انجام دهد. این مرد کوشش دارد که آنها را عذاب دهد و از این رو میخواهد خواهد آنا نامه تضرع آمیزی به او بنویسد و طلاق بخواهد. من میدانم که این کار برای آنا خیلی ناگوار است. ولی که نویشتن توری نامی او و اولادش را خوشبخت خواهد ساخت